السلام علیک یا عبا عبدالله سلام بر او که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام شبها و روزهایی رو داریم سپری میکنیم که همه با حزن و اندوه بر ما میگذره اینشالله که در ازاداری های خودتون ما رو هم یاد کنید و طوی سه بفرمایید ان خب امروز هم توفیق هست تا در برنامه خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد لaje مهدی باشیم های مختلف دیگه ای رو هم در نظر داشتیم که یک به یک به وقت خودش تقدیمتون خواهیم کرد از سخنان استاد استاد جباری استفاده خواهیم برد همینطور حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری ان که همراهی بفرمایید آیه لaje سلام می‌کنم به شما خیلی خوش میید قبول و حضرت جواد علیکم السلام الله الرحمن الرحیم. من هم به خودم خدمت همه شنواندگان عزیز از عزی سلام و تسلیت دارم و در خدمت شما هستیم بحث رو ادامه بدیم خیلی ممنون و مچکل هم آید و از حضورتون در برنامه و چنده که بحثی که داریم درباره خطبه منای حضرت عبا عبدالله رو سنده دیه. سلام و توجه شنواندگان هم قرار بگیره امروز هر قطره یه فریاد بیداری است فریاد ادالت خواهی فریادی در مقابل ظلم ظالمان و ستم ستم پیشگان امروز با هر قطعی عشق خون خدا در رکحا جاری می اهل حرم به برپا میکنم خیمه سهرائی اهل ارم ارم اشب تنهایی برپا خیمه سهرائی چه گوگایی چه گوگایی چه چه شد چهره ی عرباق تماشایی چه گوگایی چه قنقایی چه قنقایی شو چه رنگ ارواحا تماشایی جبونا با حال شیدائی دو سینه دلای دریایی همه با دل آشوراهی امون از جدایی امون دور این محمل و حلقی از بنی حاشمه هی hey در کربل و اکبر و مجتبا قاسمه دور این محمل و حلقی از بنی حاشمه ای <متحدث> در رو در خطبه منا آغاز کنیم با حضور و و المسلمی استاد لاجو لاجوردی لاجوردی دیروز از اهمیت خطبه منا از اینکه مخاطبان خطبه منا در اون زمان چه کسانی بودند و اینکه زمان و زمانه ایراد خود به امینا شبونه بود صحبت کردیم اگر خلاصه ای از بحث دیروز مخواید بگید دخل برای خواهش میکنم صحبت شد که آقا عبا عبدالله در سفر حجی که داشتن سال 59 یک سال قبل از در گذشت و فوت مواویه افصد نفر از بزرگان اون زمان رو در سرزمین منا بعد از اتمام اعمال حج جمع کردن از خانوادهشون اهل بیت بزرگان از صحابه و و برخیمه خودشون جمع کردن و این خطبه را خاندن درست. صحبت خطبه هم ان انشاءالله در بعدم بحث میکنیم و از فرازهایی که داشتم گفتیم برای درک صحیح حرکتی که آقا و عبدالله انجام دادن که قطعا منتهی شد این حرکت هم به قیام حضر و خروج حضر از مدینه و جریان آشورا از جهت تاریخی و از جهت زمانه به هم متصل هست بله درک بیاناتی که آقا فرمودن که چرا رو این مسائل تکیه میکنن و چرا رو این افراد تکیه میکنن و چرا مسائلی که مربوط به بزرگان رو هست و خیلی واضح مطرح میکنن برای فهم و درک این زمانه حزر لازم است ما جریان نفاقی رو که در حقیقت در اسلام در زمان رسول الله ایجاد شد رو بیایم این جریان نفاقی که در بنی امیه تمرکز پیدا کرده و معاویه سردار و در عقیقت جلودار این حرکت نفاق است که متاسفانه هنوز در جهان اسلام هم این جریان داره کارسازی میکنه و داره نفاق خودش رو داره سم می شده در بدنی جهان اسلام متاسفانه هنوز ادامه دارد و این کاش کنیم و گفتیم که قبل از اینکه وارد خطبه بشیم و فقرات خطبه رو توضیح بدیم باید جریان نفاق رو کنکاش کنیم با بررسی یک ابعاد شخصیتی خود معاویه و در حقیقت نشان دادن دو جریان بنی هاشم و بنی امیه. اقداماتی که جریان نفاق به رهبری معاویه انجام داد قبل از اینکه به خلافت برسد و به بر 20 سال خلافت خودش چه بلاها و چه اقدامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی برای جهان اسلام و ارمغان آورده. منه. و اثرات این اقدامات به چه صورت بوده و هنوزم ادامه بگه. و تا چند باعث امروز رو بگذاریم بحث کنیم. تا انشاءالله اگر وارد بحث خطبه شدیم در مقاطع خطبه تونیم تطبیق که که حضرت میان نقش علما رو مشخص میکنن نقش بدعت رو مشخص میکنن هر کدوم از این گفته ها و کلمات حضرت و این مخاطبین یک قسمت از طرح فراگیر معاویه و جریان نفاق رو نشون بده من همینجا به صورت مقدمتاً عرض کنم اینکه حضرت امام باحوت الله علیه فرمودن که نفاق و در آیات قرانی هم داریم از کفر بدتره بله. چون نفاق اون به کشنده ایست که در, در در درون بدن جامعه قرار میگیره شکل جامعه رو به خودش میگیرن از ظاهره اما در باطن میاد اقداماتی میکنه و ری شر خوش میکنه و بعد نفاق همیشه در چهرهای مختلف این نفاق دو چهره بودن یا چند چهره بودن فعلا. بزرگان می‌فرمایند نفاق فنا دو چهره نیست چند چهره است خودش رو به شکل زمانه درمیاره همیشه منفعت طلبه سعی میکنه چیزی بگوید که منفعتش تامین بشه درسته. حتی اگر کفر هم باشه میگوید تا منفعتش تامین باشه فی قلوب همردون خم الله مرابا اینها مریض هستن کفر باطن دارن نمیتونن اظهار کنه کتی کفر داره اظهار میکنه تخریه میشه بحنه. کفر الظهر باطن و ظاهرش در ظاهر باطنش ساده اما به دشمنانش هم خیلی کمک می کنیم بله, بله شاید. شاید. آره شناسایی میشه اما نفاق کفر باطنه اما اظهار ایمان میکنه. همیشه شناساییش سخته زمانبره نیروبره کارسازه ریشه خوشکنه حالا که چه اقداماتین کفر انجام میده؟ من این نکترم عرض کنم بعد انشاءالای دوم ادامه بحث شناخت نفاق شاید آیاتی که ما در مورد شناسایی نفاق داریم شاید نه تحقیقا از کفر بیشتره به خاطر یه نفاق احتیاج به شناسایی داره خطرشون شدید کرده شناسایشون سختره در صوره بقیده دقت کنید و که سه تیپ از متقین و کفار و منافق رو نشون در مورد کفار دو تا آیه, آیه میاد در مورد متقین تا آیه اما در مورد منافقین که میرسه بیش از ده آیه میاد توصیف میکنه مثالشون رو میزنه چکر اقداماتی میکنن برای شناسایی نفاق در جامعه خود در جهان هستم. قطعاً این مباحثی که در خطبه بحث میشه کارگرد اجتماعی امروز داره در چند محور بحث میکنه شخصیت شخص ماویه که یکی از مهمترین شوهرهاش این که تفرقه به دولت و این کاری بوده که اینجوریشا بعدن یاد گرفتم ماویه به خوبی انجام داد چه اقداماتی که چه نوع شخصیتی هست شخصیت دو جریان بنی هاشم و بنی امیه از کجا ایجاد شدن این خصومتشون از کجا بود اینا که پسرعمو بودن جاتشون که با هم برادر بودن، هاشم و هاشم با برادر بودن، بنید. چی شد این خصومت ایجاد شد؟ از کجا این خصومت شدت پیدا کرد؟ بله. و بنی هاشم و بنی امیه چرا بنی امیه با بنی هاشم اینقدر خصومت داشت؟ داره. این همه افراد کشته اگه محققی تحقیق کنه که چقدر شیعیان رو بنی امیه کشته، از بزرگان رو کشته. دونسته. واقعا انسان تعجب میکنه حالا برسه بعدن ونی عباس هم که پسرعمو بودن همین پسرعمو جز کشتن اهل بیت کاری نداشتن این چی بوده یه حسادت ابتر بوده یا نه یه ریشه عمیقی داشته دونسته. یک از کنم خدمت شما جدائی از اهداف رو داشته حضور هر کدوم نفی دیگری بوده دونسته. یکی ریشار رو خوش کنه کفر محض بوده و دیگری میخواد وحی و احیاء کنه این جریان رو بچه شناسایی بکنیم بنی بنی امیه و روش ها خیلی مهمه بحث حالا فهمیدیم ریشه ها چیه بله. فهمیدیم شخصیت معاویه کدام هست چه اقداماتی در طول تاریخ برای اینکه که بتونن نور رو خاموش کنن ایجاد شده چه اقداماتی رو کردن در چه مدتی که ظهور و برودش نصیب آقا عبا عبدالله هم میشه که این ریشاد ام خواهد خوش کنه خیلی ممنونم و چکر آقای لاجوهدی ما توی بخش بعدی برنامه این شده محشان. آواز میکنیم از خود شخصیت معاویه گفتن و اداره ممنون. خواهیم بکنیم با کاروان کربلا بسم الله الرحمن الرحیم ورود ابوالعبدالله الحسین علیه السلام به کربلا رو در دوم محرم سال 61 هجری ذکر کردند اشاره شد در برنامه قبل به اینکه امام حسین علیه السلام مدت اقامتشون در مکه حدود چهار ماه و پنج روز بود یعنی از سوم شعبان که حضرت وارد مکه شدند تا هشتم زلحجه اون حضرت در مکه حال به کار تبلیغ و تنویر ازهان و روشنگری رسوا کردن حاکمیت اموی و معرفی یزید پرداختن سخندانی های حضرت داشتن ملاقات هایی داشتن در همون مدت اقامتشون در مکه بود که نامه های کوفیان رسید به حضرت نامه های دعوت اونها فراوان رسید به عبا عبدالله حسین علیه السلام و از اون حضرت دعوت می کردن برای رفتن به کوف لذا امام حسین علیه السلام پسر اموشون مسلم ابن عقیل رو ازام کردن با ممان نماینده خودشون به کوفه که در 15 رمضان مسلم ابن عقیل به سمت کوفه حرکت کرد منتها متصرهان مسیر حرکت در کوفه و ورود ابی عبدالله ابن زیاد به کوفه و سستی کوفیان موجب شد که مسلم ابن عقیل در روز عرفه نهم ذی الحجه به شهادت برسه در کوفه و روز قبل از نهم معرفه این یعنی روز تربیه امام حسین علیه السلام از مکه خارج شدن در حالی که همه هم می‌رفتن به سمت طرفات، اما امام حسین علیه السلام به سمت عراق خارج شدند و بعد از طی مسیری که کمتر از یک ماه طول کشید اون حضرت از هشتم زلهجه تا دوم محرم در مسیر عراق بودند منتها در مسیر به خاطر اینکه سپاه حربن یزید ریاحی به همراه هزار نفر نیرو مانع شد از رفتن حضرت به سمت کوفه نهایتاً ناچار مسیر حضرت به سمت کربلا منحرف شد و ناچار حضرت در سرزمین کربلا فرود آمدن که گفته شده در روز دوم محرم بود و بر اساس تطبیقی که انجام گرفته روز یکشنبه بوده چون آشورا رو معمولا گفتن روز دوشنبه اتفاق افتاد روز یکشنبه دوم محرم امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا توقف کردن همراه سپاهشون و ایالشون و اونجا هنگام توقف در کربلا حضرت اشاره کردن به اینکه این سرزمین محل ریخته شدن خونهای ماست چنان که پیشتر امیر علیه السلام خبرهایی رو در این ارتباط داده بودند. به خدا به خدا رای کرب و بلا پسادت کند آسمان بر زمین، شده این زمین فخر عرش بریم، بود قبل قلب اهل یقین به یک بار ده سین غوغا خنی شو در کربلا خیمه برپا کنی به یک بار ده سین غوغا خنی شو در کربلا خیمه برپا کنی نازن جان زینه در این جا علم دهد خاک این سر زمین بوی غم و از قص آذار گشت دلم و از قص آذار گشت دلم جدا گرددین جا دل از دل برم، جدا گرددین جا دل از دل برم، و از کفر دست دوبار برم، جدا گرددین جا دل از دل برم، و از کفر خب باز به بحثمون درباره خطبه منا این رو هم بگم بخش با کاروان کربلا هر روز تقدیمتون میشه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری رو در این بخش میشنوید درباره ای که در واقعی آشورا افتاده خب خدمتون بگیم که از خطبه منا با حجاتورستان و مسلمین لاجوردی با هم صحبت کنیم توی این بخش های لاجوردی یه مقداری از شخصیت خود معاویه بگیم که چه شخصیتی داشته چه کارهایی انجام میداده چه هایی رو گذاشته که تا امروز ادامه داره و هنوز ادهی پیروه راه او هستند ازتی هایتون باشه تو که شما فرمودید بسیار جا داره صحبت بشه خوب مناسبه و خلاصه اینکه آیا درگیری آش را درگیر یا شورا درگی دو قم بوده دو فامیل بوده قاات قبل داشته خوبی صحبت بشه و اینکه چرا دو, نف... دو قوم ق نتونستن با هم بسازند حقیقت این همه اتفاقات تلخ نیفتید از کنم خدمت شما که بدون به حساب درک شخصیت معاویه حرکت آقا ابو عبدالله قابل تحلیل نیست. چرا چرا اینجور شروع کردن؟ چرا خانواده رو بردند؟ چرا تو اون سرزمین رفتن؟ چرا از کنم میدونستن داشتن کوفیا بی وفا. معنیش. همه به ایشون گفتن کوفه به علی وفا نکرد، به امام مشتبه وفا نکرد. قطعاً به مام حسن وفا نمیکنه چرا کوفر انتخاب کردن بدون درک شرایط اون زمان و هدفی که آقا با عبدالله داشتن که روشنگری و احیاگری بانه. و احیای سنت و سیلی به سولت صورت جهان اسلام خفته به آقا کردن به حساب به خوشگیده شدن و احیای مجدد هست تحلیل نمتون باشیم مثلا چرا ابو عبدالله نوع مبارزه شمشیر با شمشیر رو انتخاب کردن چون ما اعتقادمون این است که همه ائمه مبارزه رو می‌کردن با حکومت فاسد دیگه درسته حالا این رو هم راجعش حالا بس بله همین که ابو عبد الله قیام کردن که با شمشیر امر رو پیش ببرن یا از خودشون دفاع کردند درسته حضرت در روزایی که اونا شروع کردن یه تیر پرتاب نکرد من نمی‌خوام آواز آواز. آواز. آواز. امیرم، آمیر المؤمنم فرمودم من این خواهم آغاز کننده باشم معاویه یه شخصیت نوبقه است از چهار نابقه عربه مهن. از کسانی که بسیار زیرکه و زیرکی و قلعایی داره بسیار مکاره تراهه بسیار آینده نگره میگویند اگر یزید بهره ای از عقل معاویه رو داشت این برخوردار و حتی معاویه یزیز رو برحضر داشته بود که با حسین درگیر نشون با حسین با خشونت برخورد نکن جریان شخصیت معاویه که به چه صورتی بود بعد میگرده به اجداد خودش معاویه از بنی اومیه است پدرش عبو است مادرش هند است جدش اومیه است اومیه در زمان جاهلیت تبعید شده به شامات بله اونجا چرا تو تاریخ متنزه شده چرا نمیخوایم وارد بشیم برای تبعیدی اونجا هفته اونجاها برای خودشه بساط رو درستن تبعیدی زمان خود جاهلیت بعد از کنم حضور شما که بنی امیه و بنی هاشم از زمان شروعشون با هم یک اوائل یه رقابتی داشتن بله از بزرگان قریش هستند از بزرگان قبیله قریش هستند اما شرافت و از کنم خدمت شما معنویت بهره بنی هاشم بوده اونها نفوذ معنوی از اول داشتن تا قبل از اسلام بنده. از کنم خدمت شما بنی و نفوذ مادی داشتن پول داشتن امکانات داشتن بنده. در اینجا شاید قوی تر قوم. قومه از کنم خدمت شما قریش رو از جهت مادی به بنی اومیه رو به دنبال اون ابو سفیان و اینها سردمداران قدرت و مکینت در جزیدت العرب بودن بله اما نفوذ بنی هاشم نفوذ معنوی بود نفوذ روحانی بود نفوذ ایمانی بود این دو جریان ایمان و در حقیقت اون زمان که کفر تلقی نمی شد ایمان و بله معنویت و مادیت گرایش معنوی و عرفانی به یک قوم به یک گروه و گرایش مادی به قوم دیگر بین انا یک رقابتی ایجاد کرده بود رقابت جریان در حقیقت به تعبیل شما ایمان فطری بقید. و مادی گرایی و دنیا تلبی و کشتن و جمع کردن و فحاش و نمیدونم در حقیقت فسق و فجور دیگر حالا من اون که از جاهلیت نمیشن. میشن بله احسن نمیخوام نمونه هایی که مثلا در مورد مادر معاویه ابو ابوسفیان هند هست و مطرح کنیم که نقل می‌کنن در تاریخ این رو من میگن این صاحب پرچم بوده از جهت فحشا و زناب افتخارش بوده سنتی که اون موقع بوده اون زمان داشتن مثلا تو اونها این خیلی واقعی بوده تو اونها بله که حتی دای وقتی که میخواستن معاویه رو مزمت می‌گفتن بکنن می‌گفتن تو مادرتهنده درست و همین در عرب براش کسته شدن بله بس تقابل بین بنی هاشم و بنی امیه تقابل بین دو قوم نیست که با هم بر سر رودی آبی مقامی سلطنتی بخوان با هم یه تقابل داشته بله. باشن تقابل ذاتی است تقابل بین خیر و شر است تقابل بین نور و ظلمت است بله همونطور که اگر به غیر از بنی و هم کسی بودند بنی هاشم باز همین کار می‌کردند همین تقابل بله بله داشتن نه به اینکه حالا چون پسر عموی مده است بد از خوب است بدی کند خوبه بله. و نه اینکه چون عم ام پسر عمویا ما بنی هاشم هستن دارن خوبی میکنن اما چون دارن از ما حکومت رو میگیرن پس ما باشون بسازیم نه بس. اونا سر مبانی اهداف خودشون با هم اختلاف داشتن بعد که اسلام شد شروعی که اسلام داشتن نیومدن با رسول الله با اینکه پسر عموشون بودن شروع عموهای پیغمبر و قوم پیغمبر از قرش اومدن مخالفت کردن به حدی که صحنه رو تنگ کردن بر از رسول الله و رسول الله از مکه که جایگاه خودش عفامیلای خودش بود خارج رفت مدینه بله. اینا تمسخر میکنن و فکر نمی اسلام بتونه شوییو پیدا کنه دشمن ترین دشمن ها ابو سفیان بود بله و جنگ های بسیاری رو ایجاد کرد من برای اینکه کاملا بغض اینها نسبت به بنی هاشم مطرح بشه بله. و اینکه چرا بنی هاشم سماجت داشتن روی حقانیت دین بمانند مشخص بشه شخصی قومی فردی عکس عملی و حسادت نبوده باده. از طرف بنی آش. بعد از اینکه رسول الله در مدینه حکومت رو تشکیل دادن ابو صفیان شروع کرد تمامی امکانات رو جمع کرد باید. در جنگ احزاب میگن از کنم ابو صوفیان باعث شد که گروه ها رو جمع کنه از اف اطراف و اکناف جمع کنه تمام امکانات رو وسط گذارش. میگن چندین شطور مثلا مشروب و خواننده ها و دختران رو میزدن میرقصیدن دادن میددن میبینم خوشگذارونه همه رو به خرج خیلیم دست و باز بده به خرج ابو سفیان چرا تو تا در حقیقت اسلام که داره پا مگرد به این ببره چون این جریان اگر پا بگیره اقتدار اونها فهمیده و شناخته که جریان چه جر... آره نوعی این جریان جر... با حوش ابو سفران هست که, فرم... که این جریان پا بگیره حکومت اونها نخواهد پا گرفت و اقتدار اونها از بن خواهر در نموناشم تو جهانی امروز خود ما میبینیم علت ها و ها چیه چون می‌دونن یه جریانی پا بگیره، مکنت پیدا کنه، امکانات پیدا کنه، تکنولوژی اتمی پیدا کنه، فردا حرفی که پشت این قدرت اون حف خطرناکه. درسته. تکنولوژی همه دارن، خوچون بیشتر از ما دارن. چرا از این می‌ترسن؟ این تکنولوژی در دستان همین افراد این ملت قرار بگیرد برای آینده اونها خطرناک هست. نه تکنولوژی خطر این آدم ها آدم ها خطرناک نیستن حرفشون بله. پیامشون خب اینها ها آمدن چی کار کردن پس در رو نپذیرفتن بله. اناد ورزیدن ضربه زدن ترور کردن کشتن تبعید کردن این تاریخ چهه؟ ها بله. و شرک در مکه بعدن مبارزه کردن تا فتح مکه بله اینها از باب معلفت و قلوب هم اینها ایمان آوردن ایمانشون ظاهری بود حالا تحلیل تاریخی از جا داره توی برنامهی بیش بپرده چرا رسول الله اینها رو وقتی که فرکه اینا رو نکشتن به خاطر کارهایی که کردن بله. یک مطلب که یکی فرصتی به اینها دادن که رسول الله رحمتن دل للالعالمین آمده است برای بدها امکان خوب ایجاد کنه. دسته. حفظ خوب‌ها تمام کفایت نمیکنه رسول نوره، نور به بتابه و حتی بدها به خوب. حتی خوب کنه. دوستی تعریف می‌کرد میگفتش که اتمام حجت کردن و اونها دیدن اگر اینو اتمام حجت رو نپذیرن بله. براشون بدها ممکنه خیلی بله بلده. بلده بله, دیگه. بله. از یک طرف یه فرصتی رسول الله خیلیام برگشتن. بله. خیلیام جریانی از اونها داشتن که برگشتن بله. و از یک طرفی یک شمشیر برنده اسلام داریم که خانه از اهل مکه نیست که زهر این شمشیر چشیده این کیه؟ امیر الماند. امیر الماند. بله علی علیه السلام برای پیش برده اسلام شمشیر برنده بوده درسته این شمشیر برنده اون گروهی که بیشترین عداوت رو با اسلام داشته بیشترین زهره رو بله هند گفته برادر منو کشته برادر معاویه رو کشته اینها حتی تا زمان حکومت امیرن مؤمنین که تا زمان آقا عبا عبدالله روز آشورا اینها اومده بودن انتقام بدر احد رو بگیرن درسته حتی در زمان ائمه وقتی به ائمه حجوم می آوردن میگفتن شما مثلا قاتلین کیا هستید دیگه اونجا ایمان مطرح نبود قومیت مطرح بود شما پسر امو رو کشید شما اناد و اون کینه‌ای که داشتن خب با یه جریان ایجاد و فرصت یک انتخاب برای بنی اومیه ایجاد شده از تعلیف قلوب و یک اداوتی دیگه در عدل اینها ایجاد شده اسلام رو قائل نیستن اسلامشون عمیق نیست انتخاب نبوده فرصت طلبی بوده از یک جریان بر جریان علوی و امیرالمؤمنین که مظهر تمام اسلام بود کاملا ادابت دارند و دشمنی دارند چون او از ما کشته از یک طرف بله. و اون مانع گسترده نگاه کردن ما برای گرفتن پایه های اسلام میدونه اونا اسلام رو وصیده میخواستن بکنن برای اینکه حکومت عرب رو ایجاد کنن درستان. اون حکومت عبوسفیان به عنوان اسلام گسترش پیدا کنه و اون حکومت عموی ایجاد بشه تنها جریانی که مخالف بود میستاد می بله. جریان نمیرن ممونی شخصیت معاویه یک شخصیتیست که جامعه خودشو کاملا میشناسه بله جریانات قبیله رو کاملا میشناسه حساسیت افراد و قبیله ها و رئیس قبیله و افراد قبیله رو کاملا شناخ داره اون کینه ها رو در اون خانواده کاملا در کرده تو ذهنش ده؟ ده. کینه ها رو کاملا احقادن بدریگتن اون حقد و کینه‌ای که از بدر و از خیبر و از احد در دل داشته اون داغی که از شمشیر امیر المؤمنین در دل داشته رو جزء مبانی خودش هست برسته. حالا من توی که از بابا... مبارس بهش میپردادم در یک صحبتی میگه همه رفتن نامشون رفت وقتی اما در ازان پنج بار نام محمد ذکر میشه و من تا این نام رو دفن نکنن دفنن دفنا به هدف خودم نخواهم رسید که میگن... مبانی فکری معاویه رو نشون میدهی بله که حتی اسم رسول الله رو میخواد دفن کنه برسته. اسم رسول میخواد دفن بشه با اناد و کشتن اهل بیت خب این شخصیت ماوود یه شخصیت زیرک بله. مکار جامعه شناس بله. قبیله شناس فتنه‌گر شخصیت‌های اون زمان رو کاملا میدونه چرا زیاد رو ابن زیاد رو اومد برادر خودش کرد با اون شکل وقیه که اومد گفت ابو سفیان با مادر این زنا کرده شهادت دارن که ما دیدیم که ابو تو خیمه سمیه مادر زیاد رفته و این زیاد برای خب نص سریع تمام قوانین اسلام اینه که بچه ملحق به زانی نیست ملحق به همسر اون مرده و بعدی که از ابن زیاد زیاد ابن نوی استفاده کرد رو با اون انجام تونست این به درد کاراش میخوره این زاده به دردش میخوره یعنی حرامزاده رو برادر خودش خواند رسما شاهد آرد. تا از این تیری پیدا کنه برای زدن به جهان تشیع شیعیان عجیبی رو زیاد کرد. درسته. اوبیدولان بچه همین بود. این خاندان اصلا افتخاراتون شیعه چرا چون معاویه کارهایی که داری اشخاص رو میخواد. مروانیان رو میخواد. بله. زیاد رو میخواد کسایی که دین فروش هستن رو احتیاج حال انشالله من جریان فکریم مشخص میکنم امید. که چگونه معاویه پول خرج میکرد فضائل آقا امیر رو نقض کنه فضیلت تراشی کنه بله. و از درون سب به امیر المؤمنی شما ببینید. و تغییر مقام آزمایش راحل علیمی از که وقت تموم شد جریان بعدش میپردازیم شما ببینید یه جریان استابی بیاد جزء واجبات یا مستحبات اکیده بعد از نماز سب و احنات به میل المؤمنین بدونه درسته و جامعه هم بپذیره و بهمانی که عمل مستحب در منابر خودشون در های خودشون در نماز خودشون ما بعد از نماز تعقیبات داریم ذکر سبحان الله داریم اینا ذکر سب یه یکی هستم جرأت نمی‌کنه سوال کنه یا اصلا نمیفهمید که سوال کنه خب چرا چرا سب نفس رسول الله مگه انفس امیر المؤمنین نیست آه. نفس رسوله سب علی رسول رسوله نوزو بله به رسول کفر به خداست و امروز در تقویم دل آشقان روز ورود است ورود کاروان حسینی به سرزمین کربلا و کربلا یعنی آغاز داستان کرب و بلا یعنی نیستان هفتاد و دو نای حقیقت یعنی سجاده عشق و معراج ها اینجا وعدگاه عشق است و مسلخ مردانی از تبار ابراهیم خلیل الرحمن کمی آرامتر ساربان کمی آرامتر صاربان هاهنا مناخور كاهنا ها اینجا محل فرود مرکبهای ما و ارز کارلا خب درباره شخصیت معاویه داریم صحبت می‌کنیم برای اینکه بهتر بتونیم حالا به کلمات خطبه به حضرت منای بلا ناسه نره سلام هم بپردازیم که حالا اشاره های مستقیم آقا عبدالله داشتن در اون خطبه به فضیعت اجتماع اون روز از کارهایی که معاویه انجام داده با این شخصیتی که از صحبت کردیم رو فهمید رو بعد اقدامات اجتماعیش رو در سه دوره تاریخی تحلیل کرد بله دورانی که به عنوان والی در شامات از طرف خلفا زمانی که آقا امیر خانه نشین شده و ولایت رو از خلافت جدا کردن خلافت رو مسیح رو جدا کردن که تا هم ولایت یه امریک قدسیست جداست نمیشه این دوتا جهن بشه جدای دین از سیاست بلید. بله در حقیقت تابیدم آقا امیرمان تو نحچول بلاغه دارم که اهل نحچول بلاغه اصلا از بیانات خود آقا امیر جواب رو گرفتن. بله. حضرت استدلال قرآنی می آورن. دقیقا از همینجا انحراف شروع شد. بله. از ثقیفه حرکت اون به حساب بنایه کج گذاشته شد. خلافت رو از رسالت جدا کردن. ولایت رو خانه کردن. دین رو از درون پک کردن. و عجیبه وقتی که میخوان این کار رو ریشش رو محکم کنن میان میگن هست کتاب الله دیگه عهدی حق نداره روایت بخونه نه. چرا؟ به خواهد نگه روایات ما مکمل آیات ماست آیات ما زوجوهه محنم. آیات ما احتاجه به شاره داره یا مفصل داره وقتی شما و مفصلش در روایات رسول الله به برداشتی وحی بیانیستی بله. اگر الان میگید سنت رو احتیاج داریم اهل سنت میگم و اهل سنتیم پس چرا بعد از رهرت رسول الله روایت که راوی سنته بله. ما سنت رو از کجا میتونید در از روایت بله. پس چرا ما جلو روایت رو گرفتیم اینو توضیح بدین چرا گرفتن چون در تمام روایت فضای اهل بیت بوده راه روشن بوده باره وات رسول الله بله. هیچ چیز رو رسول الله مجهول نگذاشتن امر مجهول باقی نگذاشتن امت رو بی مسئول نگذاشتن خلاص معاویه در اون دوران والی میشه والی سه خلیفه میشه بدونی که هیچ بو کار داشته باشن مختار بوده هر کار میخواسته اونجا انجام بیداره کجا در عالیترین نقطه در شامات شام که می‌گیم بود فقط سوریه نیست فلسطین قسمتی قسمت است خود سوریه هست در وسط مرکانی هم بالا بود بالا بوده از جهت درآمد بسیار بالا بوده هم ردیف روم بوده پایتخت های قدرت های قرب اون زمان همسایه بوده به دوستان های عجیبی داشتن خب ماوی در اون جاها قدرت میگیره ریشه بیشتری پیدا میکنه بله. یک ماوی هم داریم زمان امیرل که امیرل بعد از که به حکومت می رسن کاری که میکنن ماوی رو خل میکنه به سرعت بدونه که زمان را از دست بدم. ماوی شروع میکنه خشونت خود رو کردن و مخالفت کردن و یه جریان، به حساب انهرافی و اون جنگ های کذایی که بیش به بهترین فرصت رو میگیره پس یه دوران قدرت گرفتن معاویه بله. یه دوران مخالفت معاویه است. یه دوران سلطنت معاویه است مدت 20 سال درسته در این مدت بیس ساله چیکار کار میکنه معاویه معاویه میدونه رقیب سلطنتش بنی من. الوییون هست و اولاد علیس علنا چند کار انجام بده یک. هر کسی که روایت در فضائل امیرالمومنین بگه قل و قمش کنید بکشیدش دیگه دو شیعیان امیرالمومنین دستتون آزاده مهدور و دمن چرا آقای ماویه تو که خلیفه ای حالا حکومت بهشون ندادین ندادین چرا کسی که میگه من امیرالمومنین رو قبول دارم شما میگی مهدور و دمن کسانی رو که قدرت به اومده کسانی اصلا نه تنها علوی نیستن ضد علیت درسته این کار صفحه. تمام اصحاب و بزرگان و اهل روایت یا باید مطیع معاویه می شدن یا مورد قذب قرار میگم مثل حجب نعودهی که ایشون به شهادت بسون معنی. جرم وج چی بوده؟ اینکه صد برمیرن ممی نکرد آیشه وعث راسته میشه که ماوی این کار رو انجام نده. اوج از صحابی بزرگه این کار رو انجام میده. از اگر ماوی آدمه بی سیاستی نیست میدونه اگر بهخواد قدرت و اون طرحی که داره عملیاتی بشه با حضور همچین صحابه و همچین فائ امکان نداره بعد فضائل کشی کرد یک. بعده. فضائل ساخت برای افراد بیلایق درسته روایت زیادی خدا رحمت کن من این مرد محقق من فهم. از کسا نیست که واقعا دقیق اینها رو تو کتاب خود رو مطرح کرنم بخوانن اونا که اهل تحقیق هستن که چیکارا و چه چی پولهای ابو هرهیره میمد رقم میگو موی اگه میخوایی فضیلت رو برای تو جعل کنم که قال رسول الله دروغ بگم این قیمتشه باید. و بعضی چیزا میگفت من نمیتونه با پول دیگه نمیشه نمیپذیره جامعه پس جریان نفاقی که میگفت نا کتاب الله جوری شد که روایت مجعول درست کرد به فقهای وابسته و فرومایه پول میداد فضائل تراشی کنن برای دشمنان علی و مشابه بسازن برای فضایی که میدان مؤمنین داره بیان در مقابلش میگن معاویه هم داره درسته اگر اونجا حریف نمی‌شدن از ذهن افراد بردارند ببینید شما تو جامعه خودمون همین امروز اگر بخوان فضائل حضرت امام رو یا بعد بخوان حذف کنن چون با این جریان نمیتونم آمریکا تو این مملکت بیاد کسی میتونه نم امام بهش خورده باشه نفس امام بهش گرفته باشه میتونه ذلت رو بپذیره نمیشه میتونه بگه من میتونم از دنبال حضرت امام باشم ضلت رو به پزما ها مهم نیست حالا میخوایم تون میخوا نگاز وموندی قالع باشیم به خاطر اینکه ما بتونیم یه جریان رو حاکم کنیم یه جریان رو باید محف کنیم یا ساکت کنیم یا مقابلش بترشیم درسته از ت... یک کتازی کنی. خب میخواین کلامات امیر المومین و اهل بیت رو حصف کنن چرا چون کلامات اونا چیه؟ به خاطر وحی نابه بله. کلام حق مترجمان قرآنه باب الله هستن رحمت الله هستن نابه کلامشو از اون بالا آمده خب چیکار کار میکنن؟ اولا نمیزن این مطرح بشه دوما زبانها کس رو میبرن بله. دهنها رو میخوب میکنند آدمها رو حس میکنند آدمهای جعلی رو می آورن. به طب اونها احادیث جعلی رو می کتابها پر میشه از فضائل کسانی که دشمن علی هستند انقدر زیاد میشه روایات جعلی که تشخیص بین تلاع ناب با تلاع از کنم بدلی اصلا امکان نداره سخته الان هم سخته حالا من نمیخوام نمونه رو مشخص کنم همین الان تو کتب اهل سنت با اینکه در سحاحشون در کتاب های معتبرشون در فضائل امیرالمومنین پر است اما هر که به این طرف که میاد میاد طرف شاماد ببینید فضائل امیرالمومنین معاویه رو مطرح میکنند و حتی اعتقاد به علی و حتی شرک میبرند حتی در بعضی موارد غذب فاطمه که میگه ان الله یخ قبل غذب فاطمه میگه علی فاطمه رو به خش درآورد رسول الله این را گفت یعنی نمیتونن حرمت فاطمه رو بشکنن بل اینکه قمت فاطمه رو شکندن همون در کنار در باید. اما میگن این روایت نمیتونن بگن نه میگه این روایت هست اما علی غذب درآورد پر میکنن ده خب شما منبری باشه دروغ ها رو بگن و کسی نباشه دفاع کند طبیعتاً این دروغ میشه ایمان. ما چکار کار کرد؟ یک دروغ پردازی. بله. دو، فضائل شکنی. بله. سه ایجاد بدعت. ببینید، سنت یعنی طرح خدا برای بشریت. نه برای عربه، نه برای بنی هاشم، نه برای بنی امیه برای بشریت است. بله. مخاطب دین انسانه، برای همه نسل‌ها، رحمتن للعالمین، پیامبر و کتاب آسمانی است. خب تره خدا برای بشریت نه مسیح برای مسیحی نه موسی برای یهودی هاست و نه, نه رسول الله برای عرب ها و مسلمان هاست طبعا. همه اینها برای بشریت خب تر رو رسول الله اوبرده اجراش و تکمیلش رو به عهده به اهل بیت گذاشته سنت یعنی روش به تعبیر مقام مازده سب سبک زندگی متکی به کلام خدا طبعا. و نظر خدا طرح خدا برای کامپیوتر انسان بقید. انسان چجور باید مدیریت بشه انسان چجور باید زندگی کنه حتی انسان چجور باید بیندیشد و تخیل کند انسان چگونه باید برنامه بر خدا برای کامپیوتر وجودی انسان برای رسیدن به لقاء خدا رو بهش میگیم سنت دلست. ما سنت که میگیم مثل آقا نماز بخون مستق... نه سنت این طرح خدا برای انسان بدعت علال بدل انحرافی سنت نقطه مقابل سنت بله بدعت شکل سنت رو میگیرد محتوا رو ندارد چه دلیل ندارن نماز رو عوض کنن چه دلیل داره آقا رسول الله اینجور وضو میگیرفن اونا اونجور وضو بگیرن چرا تغییر میدن چرا دین یکی از صحابه‌ای که از طرفداران بنی امیه و معاویه بوده بعدا در شامات گریه میکنه اواخر عمرش میگه معاویه همه چیز رو ت حتی نماز هم تغییر داد تو حکومت رو بخواستی؟ خب می‌خواصی بگید علی حاکم نیست خب به حکومت رسیدید میخواست بگید غنایم برای بنی امیه است خب گرفتی میخواست بگید خمس ل طلقا بله اباهه الخمس ل طلقا رو که برای فقراست برای طلقا نیست اومدید از فقرا بستید از بنی هاشم بستید اومدید فدک رو گرفتید همه اینا خب میگید منچای مادی داشت منچای حکومتی داشت به نماز مردم چیکار داشتی به زکات مردم چیکار داشتید به خمس مردم ببین میگم احکام مردم چیکار داشتید که شما شکل ها رو داره دیگه ولی محتوا م... چرا جام اینو دقت کنید خیلی مهمه خواهرمون هم صحبت بله. کرد اگر تو جامعه ای بدعت بیاد سنت میره کنار درسته احیاء سنت با م... میراندن بدعت هست حالا من کلام آقا عبدالله رو بخونم اینجا بد نیست حالا اینم خشبه. این تعبیر حضرت ابو عبد اینم حالا قد نکonan حضرت در یک اینو بخونم بعدا منو قرض کنید بفرمایید حضرت تعبیری که آقا عبا دارن به بزرگان بسره بعد از مرگ معاویه دقت کنید زمان رو بعد از مرگ معاویه است بالی. قبل از حرکت ابو عبد به طرف کوفه حضرت دارن مشخص انا ادعوكم کتاب الله من شما بزرگان بسره بسره یک مناطق بسیار مهم مهمی بسره اکثرشون عثمانی بودن معاويه نبودن عثمانی بودن، هر عثمانیه بنی اما جدا بودن از اونها. و سنت نبیه. من میخوام سنت نبی رو احیا کنم، کتاب خدا رو احیا کنم. فئن سنت قد امیتت. سنت مورده تمام شد. چیزی از سنت باقی نموند. و بدعت، چه مردم نمیتونم بی برنامه باشن که؟ بالاخره بعد نماز بخونن، بالاخره حاجم می‌خوان. بدعت جای سنت میذارن جای مادر نمی‌دونن داید. چیه دیگه رو میذارم باید. باید شما و ان البدقت احییت احیا شده و اینو دقت کنی و این تسمع و قولی اگر کلام منو شنیدید که به سنت از بی رفته کتاب خدا از بی رفته این کتاب نیست این حکومت اسلامی نیست حکومت اسلامی به اهداف است حکومت اسلامی به روش اسلامی است اگر گردن کلوفتا کلوفت بشن این اسلامی نیست درسته. اگر فقرا فقیرتر بشن این نظام اقتصادی نیست اقتصادش اسلامی نیست بله اگر بخوایم اسلامی باشیم با احیاء سنت هاست نه به باد زدن ها حالا بدعتش غربی بدعتش شرقی است بدعتش نژادی مهم اینه که بدعت بدعت هست. غیر از سنت انتسم و قولی طاعتی او امری تنها اینکه کلام حسین رو گوش بدیم اشبره حسین میذون خیلی خوبه کافی نیست اطاعت امر رو میخواد او طهرت داره او برنامه داره اصلا آمده تا رو آسمون ببره اگر قرار بود گریه کنند که خب اونام گریه کردن عمر سعدم گریه کرد برای امام حسین اینکه شور و شعور باید باهم هستن آفرین عهدکم سبیل الرشاد اگر میخوام به راه‌های رشد و هدایت شما رو من هدایت کنم دو کار باید بکنید کلام من رو بشنوید امر من رو اطاعت کنید که بدعت و سنت نمیتونن کنار هم دیگه باشه قاتیش هم نکنید یه خورده از غرب بیارید یه خورده از شرق بیارید ربا رو توجیه کنید بگید سود بانکیست اینها اگر ربا باشه فقر خواهد بود فقر هست یه جا کار ما خرابه یه جا کار ما مشکل داره پس ببینید کاری که معاویه که ها رو در دین مردم، در ارتباط مردم، در نه تنها حکومت رو گرفت، در قالب دین، محتوای دین رو داره عوض می‌کنه. بحثاً، امر یو یکذب به دین، ندیدی کسی که با دین دین را تکذیب می‌کرد. بعضی‌ها یو یکذب به دین با عزادن دین را تکذیب می‌کند، وسیله میخواد هیچ چیز، مذهب علیه مذهب، هیچ چیز به اندازه دین بی محتوا برای دین ناب اسلام ناب خطرناکی نیست همه نمشن روز دوم محرم این کار من رسید به سرزمین کربلا اون منزل آخر آفرمود هر چه ظرف دارید آب دارید آمدن آمدن نیمه روز شد درد یکی از اصحاب صدا از الله اکبر همه تکبیر گفتن گفتن چیزی بود دیدی بنده خدا گفت چقدر نقل های از دور نمایان است گفتن نه اینجا نقل قرما است بلکه اینها این بلند میاد هر میاد هزار سواب رسید حضور امام حسین. آقا فرمون تمام این جمعیت را عب دادن اسباشونم عب, عب دادن آقا دان دوست در را کجا کنی محروم به که با دشمنان نزار داری علی ابن تعان بی آخرین کس بود میگه دیگه تشنگی بر من غلبه دیدم خود آقا اومد این آب رو جرف مشک آب رو تو دهال من گذاشت بمانم زه شد معذل مخصوص آقا اذان گفت آفرمود به هر تو با اصحاب خودست منم از اصحاب خودم نماد این هر از اول ریشد از چند نید به رسول الله که هممون اقتدائی به شما می کنیم یک نماز هزار و نفر روز دوبه به محرم میان بیابون آخان شد به امامت مولا آقا امام حسین برال تا اون موقع که آقا شرمایشاتی و بنا شد برگردن تا اینکه فرمود پرمود بود سکلت که کلمات اینجا رد و بدل شد بنا شد نه کوفه و نمدین راهی سبب و در پیش بگیرن معمور ابن زیاد آمد در بین راه نامر و به هرزاد همین جا رو پیاده کن فرمود نام این زمین چیه آجان نگنباشات الفراد سم بقیم که هر بلا خب یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم از سخنان حجت و المسلمین راجب که حالا موضوع اصلی بحثمون در باره خطبه منا هست و به حالا شوق مختلف هم مجبور هستیم بپردازیم که امروز به معرفی شخصیت معاویه و کارهایی که معاویه کرده پرداختیم. آقای <تصفيق> شخصیت معاویه رو به صورت خیلی مختصر و دورانی که معاویه رشد و نمو کرد اقدامات اساسی که انجام داد که چرا این اقدامات رو کرد و چرا دشمنان امیر المؤمنی رو قلعاقم کرد چرا افکار رو تغییر داد نتیجه این حرکت هایی که انجام داد این بود که ها رو ایجاد کرد تا سنت ها از بین بره تو جامعهی که سنت ها نباشه دین نمیتونه حاکم دینی حکومت کنه و زمینی حکومت از بین خواهد رفت نتیجه این حرکت این شد که ریشا از بین بره اون حکومت دینی که هدفش احیاء سنت های دینی و الهی بوده تبدیل شد به حکومت موروسی نهایتش مانه. و سلطنتی اونم سلطنت است ایجاد شد و این جریان نفاق و این جریان خزنده و این جریان بسیار خطرناک متأسفانه هنوز داره از پشت به طبیل حضرت امام خنجریست از پشت به قلب جهان اسلام داره کار خودش رو انجام بده خیلی راحت می‌بینیم با کفر میسازه با آمریکا میسازه حتی با صحیونیس میسازه تا بیاد شیعه رو از بین هیچ توجیهی نیست دقیقا اگه امروز می‌بینیم کشتار در سوریه در عراق برای تیپایی که خودشون بهش رو از خوددا میخوان هیچ توجیحی نمیشهکن از هیچ کجا نه از عقل نه از منطق و نه از دین توجحی نداره بله. برخوااست از تفکر مآوی و بنی اومهی است که آنچنان مغزها رو پر کرده آنچنان بغز اهل بیت رو ایجاد کرد اینا کار یه روزه نبوده یه جریان بسیار خزنده ریشه است که اومده با مسائل فکری فرهنگی این رو عزیزان بدونن کف یک روزه حاکم نمیشه ده. همینطوری که حق یک روزه نمیتونه تونه تحقق پیدا کن. هر کدوم ریشه میخوان جریان میخوان یک بستر تربیتی میخوان یک بستر سازندگی میخوان استقامت میخوان که کار کارو انجام بدن این جریانی بود که امروز صحبت کردیم ان اگه خدا بخواد عمری باشه فردا وارد خطبه میشیم و مباحثو از زبان آقا ابو عبدالله الحسین انشاءالله شاءالله مستمعی كلام ایشون ایشون رو میشنویم ان اطاعت میکنیم تا ببینیم وظیفه ما چیه تا بتونم اونها ان الله انجام بدم ان شاء رو خیلی ممنونم از تشکر از شما لیزوان در عزاداری ما رو هم داد بفرستید زنده یا خب به دومین درس عاشورا در سخنان استاد دهشری بشنوید بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله درس دوم هدف است یکی از عوامل مؤثر در پیروزی یک حرکت اخلاقی، اصلاحی و انقلابی هدفدار دار بودن اون حرکته این پدیده ی اثرگذار رو شما میتونید در جا جای آشورا قبل از آشورا و بعد از این حادثه به خوبی مشاهده کنید در اینجا به اختصار به پاری از این ها اشاره میکنیم و به محضرتون تقدیم میکنیم وقتی که مروان در مدینه از حسین علیه سلام میخواد که ایشون با یزید بیعت کنه و این به دفع دین و دنیاش هست و خودشو به زحمت نیاندازه امام عکس الامل تندی نشون میده بفرماد که و علل الاسلام از سلام از بولیت الامت و برائم مثل یزید اگر من قرار باشه با یزید بیعت بکنم باید فاتحه اسلام رو بخونند مثلی لای و بایع مثله منند من به مثل یزیدی دست بیعت نخواهد داد در سخنانی ها در نامه ها و وصیت نامه‌ی حسن به خوبی همین نکته قابل مشاهده است در برنامه قبل مشاره کردیم که امام علی السلام در وصیت نامه موضوع قیام خودش رو مطرح میکنه و در ادامه میفرماد که و اريد ان امر و, و آنها ها عن من میخوام که امر معروف و نهی از منکر داشته باشم و راه روش جدیام و پدرم رو ادامه بدم این یکی هدف داری امام علی السلام یک سخنونی دارن قبل از خارج شدن از مدینه بفرمایید که مقصدمون از قیام اینه که بلاک النوری المعالم من دینک و نظهر الاسلام بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و یؤملوا من فقط ترجمه میکنم شما خودتون هدف داری رو از این متن امام سخن امام مسلم میتونید دریابید ما برای این داریم قیام میکنیم که نشانه های دین تو رو به مردم نشون بدیم و اصلاح رو در سرزمین تو به وجود بیاریم مظلومان احساس امنیت بکنند و عمل به واجبات تو بشه این یعنی هدفداری هیچکس نباید در زندگی بدون هدف حرکت کنه هدفداری درس دیگری است که ما از آشورا می آموزیم حبیبی حبيبي حسين حبيبي حسين يا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 مجالس ضد سلطه مجالس ضد شمرها ها و یزیدها ها و ابن زیادهای های زمان موجود زمان حاضر معناش اینه این استمرار ماجرای امام حسین از امروز دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه می در فلسطین، چه می کنند در عراق چه می کنند